کتاب دختر بلفی، پسر آتشی و, چهل و شش افسانه دیگر افسانه های شیرین دنیا نویسنده اندرو لنگ با ترجمه سارا قدیانی ارائه شده است کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده داستان سه برادر روزی روزگاری جادوگری بود که هر شب به شکل یک باز به روستایی می رفت و پنجره های کلیسای اونو می شکست در اون روستا سه برادر زندگی می کردند و تصمیم گرفتند جادوگر بدجنس رو بکشند اما با اینکه دو برادر بزرگتر با تفنگهاشون از کلیسا مراقبت می کردند به محض اینکه پرنده بالای سرشون ظاهر شد بی اراده به خواب رفتند و چند لحظه بعد با صدای شکستن شیشه ها از خواب پریدند. سپس نوبت به نگهبانی کوچکترین برادر رسید. او برای اینکه خوابش نبره تعداد زیادی خار زیر چونش گذاشت تا اگه خوابش گرفت و سرش پایین افتاد خارها زخمیش کنند و بیدار بشه. ماه در آسمون میدرخشید و هوا مثل روز روشن بود ناگهان پسر صدای ترسناکی شنید و در همون لحظه حس کرد به شدت خوابش میاد چشمهای پسر بسته شدند و سرش رو شونش افتاد اما خارها توی صورتش فرو رفتند و چنان دردی ایجاد کردند که او فوری از خواب پرید باز با سرعت به طرف پنجره می میرفت که پسر به طرفش نشونه گرفت و شلیک کرد. پرنده تعدلشو از دست داد و چون بال راستش به شدت زخمی شده بود روی یه تخت سنگ سقوط کرد. جوان برای دیدن باز زخمی به اون طرف دوید و متوجه شکاف بسیار عمیقی روی سنگ شد. او فوری سراغ برادرهاش رفت و با هم مقدار زیادی حیزوم و تناب به اونجا بردند. اونها تنابی به هیزمها بستند و آتش زدند و با اعتیاد از شکاف پایین فرستادند ابتدا همه جا تاریک بود و آتش فقط دیوارهای کثیف سنگی را رو روشن میکرد اما برادر کوچکتر تصمیم گرفت وارد شکاف بشود و با تناب پایین رفت در اونجا بود که او به دشتی زیبا پر از درخت سبز و گل های رنگارنگ رسید در میونه دشت قلعه سنگی بزرگی قرار داشت که دروازه آهنی اون کاملا باز بود. همه ی داخل قلعه مسی بود. دختری زیبا که مشغول شونه کردن موهای طلایش بود در اونجا نشسته بود. پسر متوجه شد که هر تار موی او که روی زمین میافته صدای یه تکه آهن رو میده. جوون به صورت دختر دقیق تر نگاه کرد و دید پوستش صاف و شفافه. چشماش آبی و از آبی بودنش برق میزنه و موهاش مثل پرتوهای خورشید طلایی و درخشانه او با همان نگاه به دختر علاقمند شده از او خواهش کرد که همسرش بشه دختر زیبا با خوشحالی تقاضای اونو قبول کرد اما گفت که هرگز نمیتونه وارد دنیای بیرون شکاف بشه مگر اینکه مادرش که جادوگر پیری هست رو کاری بکنی که از بین بره. او توضیح داد که فقط به کمک یه شمشیر که در قلعه آویزونه میتونه اون پیر و نابود کنه. اما اون شمشیر به قدری سنگینه که هیچ کس نمیتونه تکونش بده. بعد جوان وارد یکی از اتاقهای قلعه شد که همه وسایل اون از نقره بود. او در اون اتاق دختر زیبای دیگری رو دید که خواهر دختر اول بود. او مشغول شونه کردن موهای نقره ایش بود و هر تار مویی که به زمین میافتاد صدای تکه آهن را میداد. دختر دوم شمشی رو بهش داد اما پسر هرچه تلاش کرد نتونست اونو تکون بده. بالاخره خواهر سوم به طرفش اومد و یه قطره نوشیدنی بهش داد و گفت این ماجون بهش نیرو خواهد داد. او یه قطره نوشید اما هنوز نمیتونست شمشیر رو حرکت بده. قطره دوم را که نوشید شمشیر کمی تکون خورد اما با خوردن قطره سوم جوون تونست شمشیر رو بالای سرش ببره. بعد او در قلعه پنهان شد و منتظر رسیدن جادوگر موند. هوا کم کم داشت تاریک میشد که سر و کله او پیدا شد. او روی درخت سیب نشست و بعد از انداختن چند سیب از درخت پایین اومد. به محض اینکه پاش به زمین رسید به یک زن تبدیل شد. این همون لحظه ای بود که پسر منتظرش بود. او شمشیر سنگینش رو بلند کرد و با همه قدرتش پایین آورد. سر جادوگر از بدنش جدا شد و خونش رو دیوارها پاشید. دیگه خطری اونها را تهدید نمی کرد. پسر همه وسایل قلعه رو در صندوق بزرگی گذاشت و به برادرش علامت داد که اونو رو از شکاف بیرون بکشن. اول صندوق بالا کشیده شد. بعد سه دختر زیبا. حالا همه چیز بیرون آورده شده بود و فقط پسر پایی مونده بود. اما او که کمی به برادراش شک داشت سنگ بزرگی رو به تناب بست تا اون بالا ببرند ولی اونها سنگ رو فقط تا نیمه راه بالا بردند و ناگهان رهاش کردند سنگ سوت کرد و هزار تکی شد جوون با عصبانیت گفت پس اگه من بیچاره به اونها اطمینان کردم چنین بلایی سرم میومد. او شروع به گریه کرد ولی نه به خاطر صندوق و جواهراتش بلکه به خاطر دختر زیبایی که گردنی مثل مسیقو موهایی طلایی داشت او مدت زیادی رو با غم و قصه در دنیای زیرزمینی گذرون تا اینکه یک روز دید جادوگری به طرفش میاد جادوگر دلیل رو پرسید جوون همه چیز رو تعریف کرد جادوگر گفت قصه نخور مرد جوون اگه تو از بچه هایی که روی درخت سیب پنهان شدن مواظبت کنی من تو رو فوری روی زمین میبرم جادوگر دیگه ای که در این سرزمین زندگی می کنه، همیشه بچه های من می خوره. حتی پنهون کردن اونها زیر زمین و زندونی کردنشون در قلعه هم فایده نداشت. حالا اونها رو, رو روی درخت سیب پنهان کردم و نیمه شب دشمن من به سراغشون خواهد رفت. جوون از درخت بالا رفت و چند سیب طلایی رو به جای شامش خورد. نیمه شب باد شروع به وزیدن کرد و صدای خشخشی پای درخت به گوش رسید. جوون به پایین نگاه کرد. مار دراز و بزرگی رو دید که از درخت بالا می اومد. او دور تنه درخت پیچیده بود و هر لحظه بالاتر می اومد و سر بزرگشو بین شاخه ها جلو و عقب می و با چشمای براغ و شیطانیش دنبال لونه می گشت که بچه ها درون قرار داشتند. بچه‌ها ها با دیدن اون جانور وحشتناک از ترس به لرز افتادن و خودشونو به پشت برگ پنهون کردند. جوان شمشیر سنگینش رو بالا برد و با یک ضربه سر مار رو قطع کرد و بدن مار هم ریز ریز شد و به باد سپرده شد. پدر بچه های نجاتی از مرگ دشمنش خیلی خوشحال شد و به جوان گفت رو پشتش بشینه و بعد او را بالا برد از خوشحالی در پوستش نمیگنجید به طرف خونه برادرهاش دوید بعد وارد اتاقی شد که همه در اون جمع بودن اما هیچکس اونو نشناخت فقط دختر مورد علاقش که برای دو خواهر خود آشپزی میکرد فوری جوون رو شناخت برادرها که فکر میکردند او مرده است همه جواهرات را به او پس دادند و از ترس به جنگل فرار کردند. اما جوون مهربون اشتباه اونها رو بخشید و همه جواهرات را تقسیم کرد. سپس برای خودش قصری با پنجره های طلایی ساخت و تا آخر عمر همراه همسر مطلایش با خوشحالی در آن زندگی کرد.